بار دیگر تک ستارهٔ خان شهر ما رضا جعفری برای شما میخواند خداوندا دلم خون شد زه دست نارفیقانم كه این رفیقان عاقبت پابند زندانم درنگی پیش کردم با دل مردم پرست من به شمشیرم زدند از پشت و آوردن به جانم کنون در کنج این زندان خدایا هر شب و هر روز ز درد نار بیغی هاستی یارد درک گریانم تمام هستیم در راه یاران دادن برباد نمک نشناختن ما را چنین کردن پریشانم از پر قطر روح حبیب اگزی که سبر و قرار و شکی قرعبنا مجدداً عامة الثارغا غا غا غا من الله بفتحاً قريباً خداوند دلم خون شد ز دست ناره فیقان غغغغغغغ خداوند دلم خون شد ز دست ناره کردن این پیش کردن با دل مرد شمشیرم زدند از پوش آوردند به در کنج این زندان خدایا هر شب و هر روز شاید بریانا نمک مش نوختای مار آغ آغ